تصیل ارض می کنیم ایام اصارت حال الله و شهادت حضرت رعایی سلام الله علیه و خدمت مورا من حضرت ورژیت ابن حسن و خدمت شما خب ما در ابتدای جلسات اصاد الله بعد از این نکته ای رو از نهج البلاغه در مورد بحث تقوا این نکته کوتاهی رو عرض کنید چون نهج البلاغه کتاب تقوا است یعنی شما روح تقو... روح نهج البلاغه را اگه بخواید مشاهده بکنید اون حرف اصلی نحج الولاقه که تو سخنان عزت آقام هست که نحج الولاقه کتاب تقوه است آن آره موقعی که مطالعه میکنید به نکات تقوهی امیرال و این که اصلا که در منظومه نحج الولاقه و در منظومه بینشی امیرال تقوه چه جایگاهی داره اینها رو باید بررسی کنیم حالا هر جلسه قسمتی رو عرض می کنیم. در خطبی به قبل از خطبی به که اون جلسی بررسی کردیم حضرت می که عباد الله اوسی کن الله انها حق الله علیکم تقوه حق شما حق خدا بر گردن شماست و موجبت و الله حق و وقتی که شما تقبار رو میکنید می ک بر که حق شما رو ادا بکنه یعنی بهش که اقبت مطقینه او رو ادا بکنه. بعد اینجا یه نکته ای رو میفرماییم میفهم ان تستعین و قشنگه قشنگی یعنی از اون جملات حفظ کردنی ها، و... عمل کردنی ان ان علیه علیها بله و تستعین، تستعینو به ها الله. یعنی اینکه از خدا برای تقوی کمک میدید. تقوی تو این شرایط یعنی عرور از میدان مین بدونی که ما صدر تو میدانمین کناه میدانمین حرام میدانمینی که شیطان داده ما پهن کرده تو همین خطوری سلم نبایدان از از از میکنه به شکارگاه و شیطان ما کمک میخواهیم کار سختیه بیرده که صدمه نبینیم باقا هر روز در مرز خطر بینیم امان باقار علیه السلام دوره میاد که صبح شما دین دارید شب دینتون از دست دادید. شب دین دارید صبح دینتون از دست دادید. بعد اونجا فرمورش رو فرمودنه. امان باقار در اون دوره آخر زمان که الان اینجوری یعنی یه گوشی دین آدم میگیره. یه گروه مجازی یه صحبتی فضای غیرتهوایی دین دی میگیره. لذا عذر می فرمادن تستعینو علیها بالله الله برای از خدا کمک بگیرید یعنی یکی دعاهای ما دعای اصلی خب دعای اصلی ما این باشه که خدایا ما رو در امر تقوه کمک کن دست ما رو بگیر رها نکن و این رو از خدا بخوایم و این نشون میده که ما اهمیت میدیم می به باز و تسناین رو به ها از تقوا کمک کنید برای خدا یعنی برای بندگی خدا برای اینکه به خدا برسیم برای اینکه حق خدا رو به بیاریم از چی کمک بگیرید از تقوا کمک بگیرید یعنی هم از خدا کمک بگیریم برای انجام تقوی هم از تقوا کمک بگیریم برای اینکه به خدا برسیم این مسیر رو باید با تقوا طی